به نام خالق شب سلام شب خوبی رو برای شما دوستداران این برنامه آرزومندی در بر بین سرپوستان قصه و افسانه جایگاه مهمی دارهم این افسانه از کهندترین دورانها از نسلی به نسل دیگه منتقل شده و به ما رسیده در های مردمان سرخپوست کار و تلاش دلیری و وفای به عهد ستوده شده و سرخپوستان از این های شنیدنی و جذاب پند میآموزند و راه رسم زندگی و طرز رفتار با دیگران رو یاد میگیرند به باور سرفهصستان عقاب در گذشته بال و پرشون سفید بوده و وقتی که بر فراز خونه های مردم پرواز میکردن مثل تودهی پنبه به نظر می رسیدن؟ و گاهی هم مردم اونا رو با ابرهای سفید اشتباه می گرفتند. اما چی شد که عقابها بال و پرشون خاکستری شد. در بین مردمان سورپوست افسانه در همین باره وجود داره می این افسانه رو براتون نقل کنیم این افسانه برگرفته از کتاب افسانه‌های سرفوستان اثر سر هلن فورسلیکر و ترجمه اردشیر نیکپوره بشوید افسانه چرا رنگ عقاب ها خاکستری شد از سرزمین سورپوستان در گذشته های دور در دهکدهی کوچک سرفوس جوانی به نام آیتوا در کنار پدر و مادر و خواهرش زندگی میگرد روزی آیتوای جوان برای چیدن و جمعآوری میوه های جنگلی به سمت جنگل حرکت کرد به نیمه های جنگل که رسید در بوتزاری ناگهان چشمش به اقابی افتاد که بی حرکت روی زمین افتاده بود های با دیدن اغاب نیمه جان دلش به حال این پرنده سوخت و آروم اونو بلند کرد به اطراف و بالای سرش نگاه کرد و متوجه شد که این اغاب از بالای آشیونش به پایین سقوط کرده های توا زخمی رو برداشت اونو به خونه برد و فردای اون روز برای عقاب زخمی از شاخه های درختان که انسال جفسی ساخت و با مهربونی از عقاب زخمی پرستاری کرد هر روز که میگذشت حال عقاب زخمی بهتر و بهتر میشد. روزی خواهرای آیتوا به سراغ آیتوا رفتند و ازش خواستند که با اونا به کشتزار بیاد. اما آیتوا نپذیرفت و به اونا گفت: من میخوام اینجا پیش این اقاب زخمی بمونم. یکی از خواهرای آیتوا با تعجب گفت: اقاب زخمی؟ کدوم زخم؟ اون که دیگه حالش خوب شده و نیازی به پرستاری تو نداره. خواهر دیگه یه که سخت عصبانی شده بود صداشو بلند کرد و گفت تو تو اصلا به ما هیچ کمکی نمی کنی به کشتزار نمیای همش از صبح تا شب کنار این اقاب لعنتی نشستی و به هیچ جه نمیدی و هیچ کاری دیگه ای انجام نمیدی ایتاوا که حوصله شنیدن حرفای خواهرانش رو نداشت آروم از خونه بیرون رفت خواهران ایتاوا که بی‌توجهی برادرشون رو دیدن بیشتر عصبانی شدن و یکی از اونا گفت دیدین اون اصلا به حرف ما اهمیتی نداد میبینی اون دیگه تو کارا به ما کمک نمیکنه و و خواهر دیگه حرفش رو قطع کرد و گفت همش تقصیر این عقاب لعنتیه تا اون اینجاست آیتوا هیچ کمکی به ما نمیکنه و یهو گفت بیین این درق در رو باز کنیم چطوره خواهر و یه صدا گفتن بیفایده است. خلاصه خواهران آیتوا اونقدر گفتن و گفتن تا بالاخره یکی از خواهرها گفت تنها راهش کشتن این عقابه. بله همین. و دو تا خواهر دیگه تایید کردن گفتن آفرین آفرین این بهترین تدبیره. و هر سه نگاهشون به قفص عقاب خیره موند. بله گفت بوی سخاهر رو شنیده بود ساعت بعد آیتوا جوان به خونه برگشت و یک راست به سراغ قفص اوغاب رفت و اطراف نگاهی انداخت کسی توی خونه نبود و خواهرانش به کشت زار رفته بودن آیتوا به قفس اوغاب نزدیکتر شد اوغاب سکوت کرده بود و سرش رو پایین انداخته بود آیتوا دستی بر پرهای سفید اوغاب و گفت چی شده ها؟ بیماری؟ اوغاب جواب داد. بزار من از اینجا برم خواهش میکنم من نمیتونم اینجا بمونم آیتوا با تعجب از اغاب پرسید چی؟ نمیتونی اینجا بمونی چرا؟ اغاب گفت من میخوام به خونه خودم پیش پدرم برگردم آیتوا گفت مگه از زندگی در کنار من راضی نیستی؟ اغاب آروم پرهای سفیدش رو تکون داد و گفت آه زندگی در کنار تو برای من آوره ولی ولی آیتاوا به تندیر پرسید ولی چی بگو غاب جواب داد ولی خواهرای تو میخوان منو بکشن به این دلیلی که میخوام از اینجا برم آیتاوا از شنیدن این حرف ناراحت شد و با لحن بغزالودی گفت من من نمیخوام تو از پیشم بری اوغاب گفت پس میخوای من اینجا کشته بشم آیتوا به گفت نه نه نه نه من نمیخوام هیچ آسیبی به تو برسه تو هر جا بری منم بات میام هر جا اوغاب گفت بسیار خوب برو برای سفری دور و دراز خودتو آماده کن آزوگی یادت نره آیتوا با خوشحالی گفت حتما و رفت تا بار سفرشو ببنده به همراه غاب به سفری دور و دراس فردای اون روز آیتوای جوان مقداری گوشته دود زده و کیسه ای برداشت و نزد اقاب رفت و گفت من آمدم اقاب پرسید آزوگه بندازه کافی برداشتی؟ آیتاوا با خوشحالی گفت البته که برداشتم اقاب گفت آلیه حالا زود باش در قفس رو باز کن آیتاوا به تندی در غفص رو باز کرد و عقاب از قفس بیرون اومد و به آیتوای سرفوس گفت زود باش زود باش روی پشت من سوار شو آیتوا با تحجب پرسید، روی پشت تو ولی ولی من خیلی سنگینم تو نمیتونی منو نگهداری نمیتونی عقاب پرهای سفیدش رو تکون داد و گفت تو بتونستن و نتونستن من کاری نداشته باش فقط بشین و محکم به بالهای من بچسب آیتوا که چاره ایجز قبول حرف اقاب نداشت با احتیاط بسیار روی پشت اقاب نشست اقاب دوباره به آیتوا گفت حالا چشاتو ببند یادت باشه تو نباید راهی رو که من میرم ببینی اگر نه هر دومون سقوط میکنیم و میمیریم آیتوا ی جوان سریع و گفت من آمودم میتونی حرکت کنی و اقاب آروم آروم به هوا برخواست اغاب در حالی که آیتوا یه جوان روی پشتش نشسته بود از روی کشتزاری که خواهران آیتوا در اون کار میکردن گذشت اغاب با صدای بلند به آیتوا گفت چشات رو باز نکن ما داریم روی کشزاری که خواهرانت اونجا کار میکنن از اون کشزار عبور میکنیم آیتوا گفت آه خواهرانم من خوهرانم رو میبینم اغاب گفت یادت باشه چشات رو باز نکنی و بعد اضافه کرد حالا آوازی بخون تا خواهرانت بدونن که تو از پیش اونا رفتی و نیز شروع به آواز خوندن کرد آواز به گوش دختران جوان رسید سر برداشتن و برادر خودشون رو دیدن که بر پشت اقا نشسته همه یه صدا گفتن آیتوا،, آیتوا آیتوا کجا میری آیتوا آیتوا یه جوان پاسخ خواهرانش رو نداد غاو چند بار بر فراز آسمون دور زد و بعد شتابان اوج گرفت و در آن سوی ابرها دید خواهران آیتوا ناپدید شد. اقاب و آیتوا بعد از گذشتن از آسمون اول به آسمون دوم رسیدند. کلاخا در آسمون دوم زندگی می‌کردند و صداشون به نظر آیتوا شوم و غم‌انگیز دیگه نبود بلکه شادمانه و نشاتنگیز بود. بعد از گذشتن از آسمون کلاخا در آن سوی تودگه متحرک ابرها به آسمون سوم رسیدن اونجا اقامتگاه کبوترا بود اقاب و آیتوای جوان سرانجام به آسمون اقابها ها رسیدن اونجا آسمون اقابها بود و در اون با نوعی تخت چوب بسته شده بود ولی اقاب به آسونی از اون گذشت در این لحظه اقاب رو کرد با آیتوا و گفت خب حالا میتونی چشاتو باز کنی آیتوا آروم چشاش رو باز کرد و به اطراف خودش نگاهی انداخت اون نمیدونست کجاست و دریافته بود که اقاب به هوا برخاسته و اوج گرفته ولی نمیتونست تصور کنه که دهکدهی که اقاب در اون نشسته بود دهکدهی اقاب هاست خونه های اون دهکده به طور شگفت انگیزی به خونه های دهکدهی اون شباهت داشت ولی در اونا کسی دیده نمی‌شد. بوم خونهی نشسته بود اون دو با هم از دریچهی که نردبانی ریسمانی از اون آویخته بود به درون خونه پایین رفتن تو خونه کسی نبود اقاب چاقویی از سنگ خارا رو که به دیوار آویخته بود برداشت و در یک چشم برهم زدن از سینه تا پایین شکم خودش رو درید بله اقاب شکم خودش رو درید و جلد اقابی خودش رو پاره کرد بال و پر اقاب بر زمین ریخت و از میون اونها دختر سرخپوست زیبایی در برابر آیتوای جوان كه با شگفتی به اقاب نگاه میکرد ظاهر شد آیتوا از حیرت فریادی کشید صدای بال و پر زدنهای پیاپی همراه با آوازی از درون خونه به گوش رسید اقاب که در اون خونه زندگی می کردن از شکار برگشته بودند. دختر جوون به طرف دری که به میدون دهکده باز می رفت آیتوا در اونجا اقاب بزرگی رو دید که با بالهای سفید نشسته بود و گوزنی رو به چنگال داشت که اون رو بر زمین گذاشت بعد با حرکتی تند از جلد خودش بیرون اومد و اون رو به دیوار خونه آویخت اون اقاب مردینی رو بود بعد از اون اقاب ای جلوی آیتوا نشست و از جلد اقابی خودش بیرون اومد و به شکل آوی ظاهر شد و به آیتوا گفت فرزندم به خونه ما خوش اومدی تو میتونی تا زمانی که بخوای اینجا بمونی آیتوا از شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد آهو ادامه داد و گفت دختر من تو رو دوست داره اگه تو همون دوست داری با اون نروسی کن ما برای تو جلدی مثل جلد خودمون تهیه میکنیم و تو میتونی برای همیشه پیش ما بمونی آیتوا که مهر دختر جوون به دلش نشسته بود مکسی کرد و آرون با کمی شرم گفت من من حاضرم با دختر شما عروسی کنم و غاب ها فوراً برای آیتابای جوان پوستی از گوز تهیه کردن و هر یک از اقاب ها مقداری از پرهای خودشون رو توی اون پوست جا دادن و بعد هم منقاری تیز برای اون ساختن و بدین ترتیب سر جوان مثل دیگر اقاب ها دارای جلد اقاب شد آیتاوا زندگی تازه ای رو با همسرش آغاز کرد اوقابها گوشت خام میخوردن و آتاواگ جوان میلی به خوردن گوشت خام نداشت و از آزووا هایی که از زمین با خودش آورده بود استفاده میکرد کم کم از ذرت و آضواهاش مقدار بسیار کمی باقی موند. فردای اون روز زن آیتاوا به شکار رفت و متوجه شد که همسرش چیزی نمیخوره ازش پرسید: چرا چیزی نمیخوری؟ آیتوا با نارهدی گفت، دیشب تمام آزوغه های باقی مونده رو خوردم و حالا چیزی ندارم که بخورم. همسرش گفت، شاید الان وقتشه که خوردن گوشت خام رو امتحان کنی. آیتوا یه جوان از سر ناچاری خوردن گوشت خام رو امتحان کرد ولی با وجود اراده و کوشش بسیار نتونست گوشت خام رو ببله و چون بسیار گرسنه بود طاقت قد و به همسرش گفت آه من متاسفم اگه بعد اینجوری پیش بره من اگه نتونم گوشت خام بخورم باید از اینجا برم همسرش با تعجب پرسید از اینجا بری؟ ولی آیتوای جوان جواب داد من اگه غذای کافی نخورم حتما بیمار میشم همسرش مکسی کرد و گفت من نسل اقاب پیر میرم و در این باره از اون راه چارهی میخوام. اون حتما در این مورد به ما کمک میکنه. و بعد یک راست به سراغ اقاب پیر که چندان از خونه اونا فاصله نداشت رفت. اقاب پیر که از دیدن همسر آیتوا شگفت زده شده بود گفت عروس جوان مشکلی پیش اومده؟ انگار نگرانی؟ همسر آیتوا گفت ای اقاب پیر مهربون شوهر من نمیتونه گوشت خام بخوره. و غذای غذایی کافی نخوره حتما بیمار میشه من از این بابت خیلی نگران و ناراحتم غاب پیر آروم گفت نگران نباش عروس جوان گوشت رو برای همسرت کباب کن من به عقاب ها میگم که هر جا که میرن با خودشون مقداری هیمه و کنده درخت بیرن تا تو با اونها آتیش روشن کنی و گوشت خام رو برای شوهرت کباب کنی عروس جوان با خوشحالی گفت آها مچکرم اخواب پیر متشکرم تو خیال منو راحت کردی و بعد با سرعت به سراغ همسرش آیتوای جوون رفت تا این خبر رو بهش بده های اون روز اقاب مقداری پوست درخت و شاخه خوش با خودشون آوردند. آیتوا صرف پوست جوانی که بسیار گرسنه بود با هیجان زیاد آتیشی روشن کرد همه اقاب ها در این کارونو یاری کردند و با بالهای خودشون آتیش رو باد می تا خوب زبونه بکشه آتیش که شعله کشید اقاب بدون هیچ کنه حراسی پرواز می در نتیجه پرواز اونها بر فراز آتیش و دودی که از اون بلند می شد رنگ بال و پر و ها خاکستری شد اونها چنان سرگرم باد زدن آتیش و فراهم آوردن وسیله راحتی و سلامت آیتاوای جوان بودن که متوجه خاکستری رنگ شدن بالهاشون نشده در این موقع اغاب پیر از راه رسید و ناگهان فریاد زد بالاتون بالهاتون از آتیش دورشین شین بالهاتون ولی دیگه بالهای اقابها خاکستری رنگ شده بود و هشدار اقاب پیر فایده ای نداشت یکی از اقابها با ناراحتی گفت ما قبلا بالهای سفیدی داشتیم و وقتی که بر فراز ابرها پرواز میکردیم و یا روی گله برفالود کوها می نشستیم کسی ما رو از ابر و برف سفید تشخیص نمیداد. ولی الان بال و پرمون خاکستری شده اقاب دیگه ادامه داد و گفت حالا دیگه دشمن به آسونی میتونه ما رو توی آسمون تشریص بده آیتابای جوون با ناراحتی رو کرد به اقابها و گفت من از شما عذر میخوام من باعث شدم بالای سفید شما خاکستری رنگ بشه و اقاب پیر کلام آیتابا رو قد کرد و گفت نه فرزن نه گناه تو نبود ما تو رو سرزنش نمیکنیم. آیتوای جوان با شرمندگی گفت ولی شماها به خاطر تایید قصای من بود که بال پرتون قاک سری رنگ شد. غاب پیر گفت: نفرسند خودت رو سرزنش نکن. و بعد مکسی کرد و گفت: در نزدیکی اینجا پیرزنی مهربون زندگی میکنه. اون دستور غذاهایی رو که در قبیله تو پخته میشه به خوبی میدونه. من نزد اون میدم و ازش خواهش میکنم که برای تو هر روز غذایی رو تهیه کنه آیتوای جوان به همسرش که هنوز نگران بود نگاهی کرد و گفت اگه اینجوری باشه من دیگه مجبور نیستم به قبیله خودم برگردم و میتونم برای همیشه پیش تو و اقابهایت که بمونم همسر آیتوای جوان با خوشحالی رو کرد به اقاب پیر و گفت من من خیلی سپاس گذارم و اق از اینکه آیتوای جوان از این به بعد میتونه پیش اونها بمونه خوشحال شدن و به دور او و همسرش حلقه زدن فردای اون روز آیتوا جلد اقابی خودش رو پوشید و به خونه پیرزن رفت از اون روز به بعد پیرزن هر روز غذای آیتوا رو میپخت ولی اقاب ها هرچی تلاش کردن نتونستن دوباره بال و پر خودشون سفید کنن و همچنان خاکستری رنگ موندن که موندن افثانه چرا رنگ و ها خاکستری شد رو از سرپوسان آمریکا براتون نقل کردم که امیدوارم از شنیدن اون که زد پرده باشید میرچا ایلیاده استورشناس رومانیایی درباره افسانه ها میگه با وجود اینکه افسانه ها نشاندهنده دهنده روان انسان ها هستند اما متعلق و موقوف به اونها نیستند این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور ویراستار بحار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار حامد کریمی قیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانی دیگر بدرود